درود بر دوستان جان یاران همراه و علاقمندان به ادبیات کوهن پارسی، به ویژه به شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی. به ششمین قسمت از داستان زهه که ماردوش رسیدیم که بخش پایانی این داستان هم هست. نام این قسمت پادشاهی فریدون با ما همراه باشید زمان به سرعت سپری می شد و خبر جمع شدن سپاهی عظیم در کوه دماوند به تمام نقاط ایران زمین رسیده بود و هر روز گروهی از مردم با اشتیاق فراوون خودشون رو به کوه دماوند می تا به جوانان مبارز مدافع ایران ملحق بشن روزی از روزها گروهی از مردم که برای شرکت در مبارزه علیه زحاک به سوی کوه دماوند می به و همراه خود گرزی که سر اون شبیه سر گاوی بود رو برای فریدون آوردند البته بنابر روایت دقیق تر در شاهنامه گروهی از آهنگران و صنعتگران گرزی را با نشان و شکل سر گاو برای فریدون میسازند و به اون هدیه میدند فریدون با خوشحالی اون گرز رو میپذیره و به یاد حرفهای مادرش میفته و با خودش قسم میخوره که با همون گرز زهاک رو نابود کنه اما در پایتخت زحاک هر روز خبرهای جدیدی از سپاه فریدون و کاوه می رسید و زحاک با خشم و اضطراب فکر راه چارهی بود زحاک مرتب به شهرهای مختلف سفر می کرد چرا؟ چون می خواست که فریدون از جا و مکان اصلی اون با خبر نشه بالاخره وقتی که زحاک به شهر بیتون مقدس رسید فریدون هم سپاه خودش رو برای نبرد آماده کرد و لباس رزم پوشید و کلاه خود بر سرگذاشت و به سوی بیت المقدس روانه شد داستان ورود فریدون به بیت المقدس و عبورش از اروند رود خودش داستان مفصلی است که در اینجا به طور خلاصه از اون عبور میکنیم و می به اینکه چه اتفاقی در بیت المقدس افتاد به محض ورود سپاهیان فریدون به بیت المقدس تمام مردم شهر به استقبال اونها رفتند و مکان مناسبی رو برای استراحت در اختیار فریدون و سپاهیاش گذاشتند شب برای فریدون و لشکریانش در سکوت آرامش سپری شد و صبح فردا همگی با عزمی استوار به سوی قصر زه که ماردوش حرکت کردند با نزدیک شدن سپاه فریدون به قصر لشکر زحاک بیکار ننشست و سربازان خونخار و شیطان صفتش رو به سوگ مردم بیگناه حمله کرد مبارزه مدت زیادی به طول انجامی تا اینکه با پیروزی مردم که با چوب و چماق و داس و هر ای که در اختیار داشتند به سربازای زحاک حمله شده بودند درهای قصر به روی سپاهیای های فریدون گشوده شد فریدون با اون گرز گاو سرش وارد تالار قصر شد اما سری از زحاک نبود سربازه فریدون به سرعت تمام قصر رو جستجو کردند و هیچ نشانی از زحاک پیدا نکردند فریدون با خشم به وزیر زحاک رو کرد و گفت زهاک کجاست؟ وزیر با ترس و لرز آب دهانش و فرو داد و برید جواب داد ن... نمی دونم فریدون شمشیرش رو زیر گلوی وزیر گذاشت و گفت هنوزم به خاطر نمیاری که سرورت به کجا فرار کرده؟ وزیر با التماس گفت تو رو خدا منو نکشید من بهتون میگم اون اون به سوی هندوستان فرار کرد تا شاید با سهر و جادو بتونه تعبیر اون خواب ناگوارش رو که منجما براش بازگو کرده بودند، باطل کنه و بتونه از خونخواهی و انتقامجویی شما در امان بمونه مطمئن باشید که به این زودی به اینجا برمیگرده فریدون وقتی که از آمدن زحاک اتمینان پیدا کرد تصمیم گرفت تا در قصر بمونه و منتظر اومدن اون باشه. از طرف دیگه یکی از کارگزاران زهاک که اوزار رو اینجوری دید با هر هیله و نیرنگی که بود از قصر خارج شد و در بیابون به راه افتاد تا بتونه این خبر رو به زهاک برسونه زحاک در هندوستان شاد و خوشحال از اینکه جادوگران رو ساهران هندی تونستن تلسم خواب بد اونو پیدا کنند و اونو باطل کنند به همراه سپاهیانش در راه بازگشت به بیتول مقدس بود که مرد خدمتگزار خودش و به لشکریان اون رسوند و تمام ماجره رو برای زحاک تعریف کرد زحاک با تعجب گفت اما جادوگرای هندی تلسم اون خواب و باتل کردند و گفتند که این دیگه تعبیرش بی اثر شده تو مطمئنی که نام اون مرد جوان فریدونه؟ خدمتگزار جواب داد بله قربان اون خودشه با همون قدرت و نیرویی که خوابگذارا گفته بودن حتی گرزی هم داره که شبیه سر گاوه زهاک از از پایین اومد و دو دستی به سرش کوبید آرزوی مرگ کرد و با نالو و زاری بر بخت بد خودش لعنت میفرستاد و جادوگرای هندی رو که تقلبی از کار در اومده بودند نفرین می کرد. بعد از مدتی زحاک آرامش خودش رو به دست آورد و دستور داد تا سپاهیانش برای مبارزه با سپاه فریدون آماده بشن سپاهیان زحاک با قرور رو کبکبه و دبدبه وارد به شدند و انگامی که خبر ورودشون به شهر رسید فریدون هم سپاهشو آماده نورد کرد و به سمت سپاه زحاک حمله ور شد مردم با دیدن سپاه زحاک ماردوش به روی بامها رفتند و چون وسیلهی برای جنگیدن نداشتن از اون بالای بامها شروع کردن به پرتاب سنگ به سمت سربازای زهاک، آقای عجیبی به پا شد. توی اون گرد و غبار و هیاهو دو سپاه روبروی هم قرار گرفتند و نبرد شروع شد. سپاهیان فريدون شجاعانه می‌جنگیدند و سپاهیان زهاک ناامیدانه سعی میکردن در مقابل زرمات شمشیر و گرز از خودشون دفاع کنند هوا رو به تاریکی گذاشت و که خودش و سپاهشو در آستانه شکست میدید دور از چشم همه به سوی قصر رفت و در گوچهی پنهان شد تا بتونه شب هنگام به سراغ فریدون بره و اون رو به قتل برسونه با فرارسیدن شب سپاهیان خسته فریدون به همراه اون وارد قصر شدند. اون زمان رسم بود که شبها جنگ رو متوقف میکردند و با طلوع سپید دم دوباره نبرد شروع میشود. پاسی از شب گذشته بود که زحاک به آرومی از مخفیگاه خودش بیرون اومد و به سمت اتاقی که فریدون در اون استراحت میکرد براه افتاد. کلاه خودی رو روی سرش گذاشته بود و جامعه رزم بتن کرده بود و خنجری تی و رنده برای کشتن فریدون آماده کرده بود و وارد اتاق شد زحاک به آرومی خودش رو برای سر فریدون رسوند و همین که خواست با خنجرش سینه اون رو بشکافه فریدون از خواب پرید و از جای جست و به سوی گرزش ره. زحاک دوباره با خنجر به فریدون حمله کرد و فریدون هم گرز گاو سر رو محکم در دستش گرفت و ضربه شدیدی بر سر زحاک کوبید. طوری که کلاه خود فلزی روی سر زحاک به دو نیم شد و خون تمام سر و صورت زحاک ستمگر رو پوشوند. زحاک از درد به خودش میپیچید روی زمین افتاد و فریدون نفس نفس زنون به اون نزدیک شد و جامعه رزم و اون زرهی رو که زحاک بتن کرده بود بیرون آورد تا بتونه اونو بشناسه فریدون همین که چشمش به مارهای روی شونه زحاک افتاد فهمید که به آرزوش رسیده و با شادی فراوان سپاهیاشو صدا کرد و گفت که با کمک هم جسد زحاق رو از قصر بیرون ببرند و در شهر جار بزنند که زحاق نابود شد و دیگر ظلم و ستم زهاکی به پایان رسید تمام مردم به شادمانی و پایکوبی پرداختند و خداوند بزرگ رو شکر گفتند اونا از فریدون خواستند که بر تخت سلطنت بشینه و پادشاه ایران زمین بشه و اون شب به افتخار پادشاهی آتشی بزرگ برپا کردند و مردم انبر و زعفران و گیاهان دود کردند و جهان روشن و نورانی شد بله دوستان این خلاصهی بود از پایان زندگی زهاک ماردوش و پایان دوران ستم و ظلم زهاکی در ایران باستان پادشاهی فریدون سراغاز روزهای روشن و تابناکی برای کشور عزیزمون ایران بود امیدوارم که از شنیدن این قصه لذت برده باشید و امیدوارم که شرح کامل این داستانها رو که در شش قسمت تقدیم حضورتون کردم در شاهنامه حکیم برقاسم فردوسی با شرح و بست بیشتر و با قلم و بیان شیوای شاعر بزرگ پارسیگوی فردوسی بزرگ دنبال کنید و از اون لذت ببرید و درس بگیرید شاد و پیروز و سربلند باشید تا برنامه دیگر بدروب